خیلی ممنونم که منو دعوت کردین. مرسی که اینقدر بهم لطف داشتی. خواهش میکنم لطف تو دوست عزیز و خیلی ممنونم که قبول کردی با من یه گفتگو بکنیم. خب اول از همه بگو که حال و احوال چطوره؟ خوبی؟ خوشی؟ همه چی خوبه؟ همه چی رواله؟ ممنون خدا رو که حالا بهتره. ولی یکم به خاطر لرفتن رفتن وبلاگم الان به مشکل خوردم. اوخ خو خو اوخ خو خو اوخ اوخ چقدر بد. میتونم به نوع حالت رو درک کنم اتفاقا با یکی از بچه ها هم صحبت میکردیم و با هم گفت میزدیم در این مورد اه اه اونم اه یه سری نظراتی راجع به این قضیه داد و من هم مخالف اینم که آشنا وبلاگ بلاگ آدم رو بخونه ولی خب میخوام نظرت رو هم بپرسم که کلن چرا دوست نداری و این حرفا ولی خب بعد هم بهش میپردازیم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 و چهار تا کنکور ناموفق تا یک دارم متاسفانه یه برادر کچکتر از خودم دارم و متاسفانه بازم متاسفانه که خواهر ندارم و الان هم توی شهر قریب زندگی میکنم و هیچ فامیل و آشنایی هم ندارم منظور هم میده که فامیل و عاشنایی تو اون شهر ندارم قبل از اینکه که بگی یه برادر کچکتر دارم خیلی متاسفانه متاسفانه گفتی؟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 من توی خیلی جاها شکست خوردم و باز دوباره بلند شدم و تلاش کردم و به نظرم مهم تسلیم ش... نشدنه و تسلیم شدنه که تصف داره و تا زمانی که آدم تسلیم نشد و هی تلاش کنه به نظر من خیلی خوبه پس به نوعی تو مادر کنکور ایرانی البته <تصفح> شوخی میکنم امیدوارم که سال دیگه بهتر کنی و منو شنوندگانم برات حسابی دعا کنیم که سال بعد یه خبره خیلی خوب راجع به کنکورت و ما بدی و این تصدیم و بدون که این تصدیم شدنه که تصف داره نه صرفا کنکور شرکت کردن خیلی هستن بار دهان قبول میشن و خیلی هستن بار بیستم قبول میشن اصلا این قبول شدن تعداد کنکور مهم نیست مهم این که آدم تصدیم نشه و در نهایت موفق میشه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 خب میتونه به همون بگی که از چه سالی و چه ماه چه روزی بپرکتیمشتن رو شروع کردی و میتونه بگی اصلا چه کسی تو رو با دنیای ویبلگ آشنا کرد از اون روزا و از اون حال هواها به همون میگی که کلا چطوری با این دنیا آشنا شدی و اون موقع چطور فکر می‌کردی؟ برای مون بگو من ماه و روزش رو دقیق یادم نمیاد ولی سال تحصیلی 8 9, -9 بود که من سوم در بودم برای انجمن اسلامی مدرسه‌مون قرار شد که وبلاگ بزنیم اونجا ما رو با وبلاگ و ویبلاک نویسی آشنا کردن طریق کار و ساختش رو بهمون یاد دادن بعدمندم که چرا چیز باحالیه چرا واسه خودم نسازم یه ذره تو وبلاگ‌ها گشتم دیدم که روزانه روزانه نویسی می‌کنن گفتم چه کار خوبیه چرا من ننویسم اون زمان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 بعدش یه مدت خاطر درس و این چیزا ولش کردم بعد اینترنت هم دایالاپ بود خیلی سختم بودش دوباره بعد یه مدت یه وبلاگ دیگه زدم توش دوباره روزانه ها نوشتم که اسمش رو اصلا یادم نمیاد که بعد اونم ول کردم بعد چند سال دوباره رو که اومدم وبلاگار خوندم حواس کردم که برگردم سراغ همون وبلاگم که بعد فهمیدم که بلاکفا متصدفان ویبلاغ ها رو از بین برده منم نشون یادم نمی اومد زنه چه شدم ولی و بعدش دوباره شروع کردم با اسم نیلی نوشتم خیلی حالا هوای خوبی بود خیلی جالب بود انگار که یه دنیا جدیدی برون باز شده بود نمیتونم حسم توصیف کنم جوری بود که فقط دوست داشتم اینترنت فعص بشه و من بشینم وبلاگ بخونم پیشتر خوندنشو دوست داشتم بح بح پس از سوم دبیرستان شروع کردی اونجا با وبلاگ اشنا شدی نمیدونم چرا این اصلا این عادت زشته خیلی از مدرسه که یه اسلامی دارن که سریع چند نفر رو میارن توش میگن برو ویبلاگ بساز ویبلاگ ها ساخته میشن مطالبش از سایت های اسلامی کپی میشن با یه چند تا عکس خاص بعد وبلاگ بعد از یه مدتی حالا میره تو مسابقه جواهزش رو میگیره یا اون دانش آموز اون درس رو میخونه از اون سال میره از اون مدرسه میره و وبلاگ همین جوری بالا استفاده میمونه و دوباره همین چرخ تکرار میشه دانش آموز جدید وبلاگ جدید و اسپامین میشه. من یادم بهم به هم به پیشنهاد شد که بیا و وبلاگ انجامن اسلامی رو بین اماته یه قسمتی داشتی کلا دینی دینیو اینا میکردنش یادم نمیاد ولی معلم پرورشی اینو مدیریتش میکرد. و من قبول نکردم و گفتم من نیستم و نمیتونم من نمیتونم چه عادت زشتیه که مدساها دارن ولی خب من خیلی سال پیش شروع کردم منم روزش رو یادم نمیاد خیلی خوبه و ولی اینو یادم میاد که توی این که بودم با معلم ادبیاتم خیلی وبلاگ بازی می‌کردیم من معلم ادبیاتم کامنت می‌دادم چند بار رو با من کامنت داده بود و این صحبت ها من یه خاطری دارم که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 من کاملا یادم میاد. اون زمان کامنت کم بود ولی با عشق زیاد بود. کارتا کارتارو چند میخریدی؟ کارتارو من یادم نمیاد. من خودم نمیخریدم. داداش هم میفرستادم برام بخره از جیب خودش میخرید. دیگه خیلی تغییر نکرده. فقط اون موقع فکر میکردم که جایی که فقط باید رسمی بنویسم همه چیزو این حقیقت مو به مو بنویسم نمیدونستم که باید که نگه داشت برا آره چیزایی رو ننگذاش برای خودت آره درسته بعد داددمیه چیزایی رو برای خودش نگرد در صورتی که با بزرگ شدن متوجه شدی که کلم فضای وبلاگ ها خیلی تر از چیزی که فکرش رو میکردی و اینکه دقیقا من یادم که یه سال امتحان داشتم بعد یه وبلاگی پیدا کردم که خیلی قشنگ بود آهنگ مدررسرک مزی فرله هم گذاشته بود تمام وقت روز اون خود چقدر جالب. ما همروزه دیگه فکر نکنم چینی مخاطبهایی داشته باشیم که یه روز بذارم بیان رو به استراخ کامل بیل بزنن و سر تا ترشو بخونن البته این نوع هم که آدم بره سر تا بیل بزنه هم دیگه نداریم خیلی کم داریم به نظر من ولی خب آه... اینطوریه طرست وقتی بزرگ شدم تازه فهمیدم که ویبلاغ نویسی واقعا خیلی بزرگه و تونه بیرحمان باشه آره به نوعی وبلاگ نمیسی میتونه بیرحم باشه ولی خود خود وبلاگ نمیسی نه خود وبلاگ نه بلکه اون آدمایی که توش هستن میتونن بیرحم باشن مثلا این میمونه اینستاگرام خود برنامش بیرحم نیست ولی اون آدمایی که توشنن اون محیط رو یه محیط بیرحمانه میکنن چون رفتارهایی توش میکنن که بسیار بیرحمانه است ولی خب آره آدمای بیرحمی وقتی زیاد توش باشن میتونه بیرحمم باشه ولی فعلا میخوام از شروع شروع بهش به پردازیم و بعد همی قضیه میرسیم هم می دوستایی که اون موقع داشتی الان هم هستن و با در تماس هستن یا نه همون موقع موندن و دیگه ارتباطی ندارید با هم ولی من همزم اینجوری هم ویبلاگ... اگه یه ویبلاگی دنبال کنم حتما یه روز برمیگردم از اولین پست تا آخرین پست میخونم. بعضی وقتا کامنت های پستام میخونم. اوه چه جالب، کاتتو کامنت های پست. خب همه مثل تو نیستن. تو فکر کنم تا کنم تو من بیل زده باشی. ولی خب بس، اگه اونطوری هستی که باری کرده تعجب کردم. نه من متاسفانه موقعش تو سی فقط از وبلاگ نلی دوست دارم. چرا بعد که اون موقع دوست زیادی نداشتی، اصلا میگی دوست نداشتی، ولی همه ویب... همه دوستات از نلی داری. ولی فکر می کنم وقتی وقتی که میگه من خودم به بیل زنم و کل محتوای وبلاگو می خوندم و حتی نظرات رو من فکر نمی کنم تو حالا من انقدر سخت خونده باشی ولی من فکر می کنم قبل از اینکه خودم با ما باس کنم بهت سر می زدم ولی گذری از اون وقتی که قالب وبلاگیت کاملا سفید بود و عکس یه پنجره داشت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 یا نه کلیاتش همونه که خب گفتی دوستی نداشتی و خب با من از نمیتونی مقایسه کنی آره موقع دوست نداشتم ولی خب چون خواننده پر و پاکورسی بودم میتونم بگم که قدیمه خیلی سمیمیتر مینوشتن و کمتر دنبال پوز و برند شدن و این چیزا بودن خب اون زمان من رو محل نمیدادیم و و نمیدونم چرا و یادمه یادرسی هم داشتم قبلا قدیمی که outof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 مطالب خوبی اگه باشه میخونم استفاده میکنم. پس فکر کنم من بتونم راحت پیدا کنم. اینقدر فکر میکنم بیل بیل زدم و برایتو که قلب نبیتو دیگه بشناسم. و خیلی راحت تابلوه و تابلو می نویسی و خیلی راحت اگه آدرس هم دادیم من میتونم کنم. پس بهتره که از این شوخی ها با من نکنی. من یاد یه قضیه انداختی. یه فلاکری هست که من خیلی تو سشتنم.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 تپه تپه یا تک به تک یا هر چه میدونم شعبه جا طرف نیستیم. ما الان با یک شبکه طرفیم. یه محدوده طرفیم که داخلش یه سری آدرس ها وجود دارن که تو شما داره محتوى تولید میشه و اسمشون هم ویبلاگه خب. ما داریم این رو نقد میکنیم و بهش بررسی میکنیم تو مورد اول هر شعبه برای خودش هر کار دوست داره میتونه بکنه حالا نهایتش اگه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 کجا بحث بودیم اونجا بودیم که خیلی انسان‌های پیگیری هستیم و این که فکر می‌کنم اون زمان و چیزی که طبق چیزی که گفتیم تو فکر می‌کنین که اون زمان بهتر از امروز بود خیلی خوبه کلا پیگیر بودن خیلی خوبه ولی این که خیلی بعد ابلوگ میره فقط تو کانال مینیویسه این خداش خوب نیست خب حالا میرسیم به سوال بعدی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 ما با هم دعوان کردیم اون فکر می... اونم اشاره کرده بود و می گفتش که متاسفانه باند وجود داره خیلی حرفه‌ای هم وجود داره و اینا دارن همه رو اذیت میکنن همه تازه‌واردها رو بایکوت میکنن توهین میکنن تو خصوصی ها اینا ناجور میکنن ناامید میکنن و حذف میکنن که فقط خودشون باشن هیچ کسی نیاد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 چون زندگی یا سخت شده الان رفتار اینطوری شده ولی من باهت مخالفم چون که ما در نهایت پشت سیستم نشستیم و پشت دستکانون که حداقل میتونیم با مهربون باشیم نمیتونیم آره اینم هست قب شدم دیلش نگاه از بالا به پایین بعضییا باشه. دیگه رو در رو که هم دیگره نمیبینیم بینیم پشت سیستم کلمه تایپ کردنه پس همه سختی ها رو دارن. من این رو دارم پس چرا من سعی می همیشه،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 ولی اینکه صرفا سختی باشه من برم چشم رو در بیارم که خب نه من مخالفم و مخصوصا پشت دستگاه دیگه پشت دستگاه که اصلا هیچ گونه بهانی وجود نداره و تو فکر می‌کنی تو هم با من موافقی که ببلاگیمسایی این برس خیلی فخر فروش و مغرور شدم. آی آره خیلی موافقم چون من خیلی از این ببلاگات دیدم که کلی هم طرفتار خواننده دارن ولی من واقعا دلیلی محبوبیتشون رو نمی تو دلیل که محبوبیتشون رو نمی که خب باید بخالف هم صرفا یکیزی که رفتارش بعد دلیل نمیشه که همونو بایگوتش کنن که نه باید مخالف هم به نظر من آدم میتونن اینطوری رفتار کنن خب مشهورم باشن فرقی نداره واقعا من هم نمی دونم شاید چون حس می کنن قدیمی ترن یا خواننده های یا دوستایی بیشتری دارن یا به خاطر شغل یارشته، یا رشته یا وضع مالی نمیدونم واقعا ولی خب اینطوری که من فهمیدم تو فکر میکنی که پس آدمی که مغرور اصولا نباید محبوب بشه یا همه بشناسنش و اینا فهم میکنی آدم نباید اینا رو محبوب کنن نظرت اینی که اینا رو نبینن به نظر من کسی که مغروره نمیتونه محبوب بشه ولی تو چیزی که تو جاامه می بینم دقیقا برک سینه. نمیدونم من خودم نمی جذب کسی که مغروره بشم یا حداقل باش ارتباط بگیرم و بخوام بخونمش مم. نه به نظرم نباید محبوبشون کنیم این محبوبیت بیشتر مغرورشون میکنه. کاش ازشون می بخوایم که اذ رو بیام پایین تر. مادما واقعا با هم فرقی نداریم مصویم این نگاهه به نظرت چرا وجود داره؟ واقعا منم نمیدونم.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 نمیشه اینو همزمان یه ای آدم به پرتو سخت شناک کنه ولی خیس نشه. نمیشه وقتی که آدم یه کاری رو شروع میکنه باید پیش هم به تنش بماله. وقتی که آدم یه وبلاگ درست میکنه که به ان ویسه حرفاش رو مردم بشنود تامال اجتماعی داشته باشه ارتباط برقرار کنه بعد از روزی یک ساعت رو برای قضیه وقت بذاره. برای مثال من میشینم نگاه میکنم. می که آره من وقت ندارم. صبح میرم مدرسه،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 بفروشمش پول در بیارم خیلی بهتره. پس من وبلاگ نمی نمی‌نویسم، باز نمی‌کنم. وقتی که اومدم باز کردم یعنی دیگه باید براش وقت بذارم. وقتی که سی دی وقتی که میخوام پول در بیارم از آموزش باید بشینم روش کار کنم، سی دی تولید کنم مثلا. نمیشه که آدم کار رو شروع کنه بعد بگه وقتشو ندارم. نمیشه آدم بگه خب جمعش یه آلبوم درست کنیم بعد بگه وقتشو ندارم آلبومم رو درست کنم. من منظورم متوجه میشه این نظر شخصی منه وقتی یادم یه وبلاگ داره یعنی موظف باید به مخاطب احترام بذاره باید برای مخاطب وقت بذاره و باید هرچی که مخاطب میگه بگه چشم و باید وقت باید براش باز کنه و باید درست مدیریتش کنه و آره به تو متاسفانه اینطوری شده برعکس شده و هرچی احترام کمتره وقت کمتر گذاشته میشه اونادقا محبوب تره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 هم ببخشید یا اشخاصی که عملا توی این نظر این نگاه از بالا به پایینشون رو حفظ میکنن و هیچ از با خخاطربینم اینو نمیتوننم متوجه بشن چرا فکر میکنین چرا اینطوری شده؟ چیزی که میبینم دارم میگم برکس شده چون و عمللا به که نظراتو جواب نمیدن یا بد برخود میکنن خیلی طرف بیشتره بیشتر روز به روز فارشون بالاتر میره من نمیگم بیاید منو فالو کنید ولی می‌خوام اینجور را درمار فالا نکنیم حتی اقلش اینه که میتونیم یه ذره به خودشون بیاریمشون. اشون نمیتونم میگم کامل موافقم یه مقداری باید نظرت به نظر من باید اصلاح بشه متاسفانه دروگم خیلی زیاد شده بهت میگم باید کامل موافق نیستم ببین نمیشه یه طرفه به غازی رفت اه یعنی اه به همه از این حک داد ولی خب برای بعضی هاشون صدق میکنه و مشکل اساسی اینجاست که ما, ما ایرانیا کللا به وتسازی عادت داریم. یعنی بعضی غرور تقصیر خودشون نیست این غرورها رو بهشون میدن بقیه. با ایرانیا کللا خاصیتمون سریع یکی که یه ذره خوشمون بیاد سری رو میکنیمش بوت تو همه زمینه ها یادم دقیق نگاه کنه،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 خب طرف نمیفهمه که کدوم کارش درسته کدوم کارش قلط الان مثلا فکر من توی یه شرکتی دارم کار میکنم پنجاه تا مشاور دور خود انجام کردم که اینا نظر بدن رو کارم من. من کار درست انجام بدم وقتی که من هر کاری میکنم اینا میگن به خب من متوجه نمیشم که کدوم کارم قلطه کدوم کارم درسته فهم کنم همش درسته دیگه چه همه دارم میگن به. مخاطبه هم این طوری وقتی نمیدونم این خاصیت تو مغز ما چیه یه هم مثلا میان یه چیزی رو خوششون میاد بعد بوتش میکنن بعد پرستش میکنن بعد اگر بگی بالا چشه دبروی در درمیارن خود من چندین بار به چند نفر انتقاد کردم موریداش ریختن توهین های خصوصی کردم یعنی توی قسمت خصوصی حسابی توهین کردن و گیر دادن چرت و پرت گفتن کلن به این به این شکل از بلاگران نمیشه درآمد گرفت که تو چرا اینطوریه؟ چون اینو این پامنبری ها اینو انقدر بادش میدن تقصیر خودش که نیست حالا مگه منم پامنبری ها منو باد بدن خب منم هم دقیقاً همین کارو میکنم دیگه دقیقاً درست مثل اینستاگرام اینستاگرام دقیقاً چطوریه همینو کپی کن این،, این طرف یعنی همینه آره راست میگه از این نظرش نگاه نکرده بودم اینم فکر میکنین چرا بللاگ رو به اینجا رسیدم؟ برای خودم ساله؟ پس برای هم سواله. خب من جواب میدم سال خودم و البته با نظر خودم خب نظرت هم هم، ولی خب خیلی دوست داشتم نظرتون بشتم ولی خب اینار رو که میگم تو نظرتون نظرت نسبت به اینا بگو. اگه نظر منو میخوای نظر من اینه که ما آدما کللا به غرور میل داریم کللا خوشمون میاد از غرور از.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 بلاگرها خیلی ما خیلی بلاگرهای خیلی مدعی داریم که تعریفای اولیه خیلی چیزها رو تو این رشته نمیدونن یعنی اثر همین ندونستنم هم رو تبدیل میکنن به اینستاگرام و که این تبدیل کردن معلول این دلیله چون فضا رو بلد نیستن فکر میکنن اینم یه چیزی مثل اونه فکر میکنن اینجا بعد اون کارو کرد یعنی وارد میشن فکر یعنی اونطوری فکر میکنن که اگر تعداد کامنت ها از مثلا مثل دنیا جهانبخ باید یکی رو آدم حساب نکنن یا مثل آقای ایکس فلان کارو رو بکنن به اسطلا سلبریتی که میشن احساس سلبریتی بودن بهشون دست میده بعد دیگه شروع میکنن کلاس گذاشتن که ما وقت نداریم من بازم میگم تا زمانی که ویبلاک داری باید به تحت هر شببهی یا آدم باید ببنده وقتی که وقت نداره باید ببنده چرا باز میکنه؟ چرا پست میذاره؟ خب یا باید ببنده یا باید بره جاهایی بنویسه که نیازی به به قول معروف ریسپانس به نظرات و اینا نداشته باشه. خب فکر نمی کنم. من رک بگم تو کل سرویس ها تعداد خیلی کمی.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 وقتی که این تعداد بالا رفت یعنی چون نمیدونم قضیه چیه اه اه این اینو داشتم گفتم که نمیشه وقتی که آدم وقت نداره خب میتونه یه سرویس رو ببنده نیازی نیست که بازنگرد داره مطلب بنویسه اگر وقت نیست من چندین بار از خیلی‌ها شنیدم میگن مثلا به خودم میگم میگن آقای حاطف اگر وقت نداری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 من آدم وقتی وقت بذاره این 1300 تا رو میتونه جواب بده چون اولا نیاز نیست همه رو یه ای جواب بده بله اگه بخوای همه 1300 تا رو تو یه ساعت جواب بدی بله وقت نیست ولگه این اینو پخشش کنی توی هفته راحت میتونی در ازای هر مطلبی که میذاری خب 80 تا میانگین 80 تا تا 1300 تا خیلی فاصل است میشه کنترلش کرد و میشه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 پامنبری ها بقیه همون بی سوادان که منتظرن حرف من زده بشه برای همین قابل احترام هم نیستن حتی اقل احتراماتو باید بهشون گذاشت مگر اینکه که ثابت کنن در سطح من که اون وقت پذیه فرق میکنه که اینم آفت قضیه هست دیگه مثلا اگر من خدای نکرده مثلا حالا سوادم اندازه ابلاغیر نباشه حمالا باید برم بمیرم دیگه که نظرم ارزش نداره. من نوعی ازشون انتظار ندارم پاشم بیان اینتراکشن با من داشته باشن، تعامل اجتماعی با من کنن، منو بخونن. ولی دیگه بی‌محلی و حسب نظر و توهین تو نظرات خصوصی و نگاه بالا پایین و بیان به بدترین و تهوع‌آورترین واژه‌ ممکن یه تعامل اجتماعی رو خراب کنن و یه اینتراکشن رو برقرار نکنن، دیگه خیلی این من دیگه انتظار عذاب این،, این کار رو نکردن رو دارم. که نیان این کارا رو بکنن مثلا نیان پاسخ خیلی ناجور با آدم بدن حال آدم بچه مثلا هم که زدم دیگه فکر کن یه نفری این خیابون را میری یه نفر میگه ووو چل باز قشنگی پوشیدی بعد شما برمیگردی چپ چپ نگاش میکنی میری یا اصلا هیچ, نگ... هیچ توجه ای کنی که انگار نگار حرف زده بهت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 وقتی که میگم آدم تا هزار و سی ست میشه پاسخ داد و خیلی وقت نمیبره برای اینه خودم عدبین بودم این کار رو کردم من همیشه سعی کردم به همه اون تایمایی که ویبلاک داشتم به همه نظرات پاسخ بدم و همهشون رو بی پاسخ نظرم نگاه از بالا به پایین نداشته باشم مگر تو نظر یه توهینی به من شده باشه یا من بی ارزش از اون نظر دیده بشم اون وقت قضیه فرداره یه مقداری محتاطانه پاسخ میدم ولی همیشه سعی کردم با نهایت احترام و مهربانی و دوستین کار انجام بدن ولی خب بلاگرایی بودن که وقتی کسی نمیشناختشون تون اینا با کامنت کامنت های که به بقیه بلاگیر ها میدادن این ویبلاگ ها رو سوراخ میکردن بعد که یه ذره تعداد نظراتشون رفت بالا این مثلا بلاگر صفر نظر داشت دقیقاً این اینستاگرام صفر نظر داشت وبلاگر رو سوراخ میکرد بعد وقتی تعداد نظرش مثلا شد 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا 200 تا دیگه بقیه رو محل نذاش و بقیه دیگه براش بی ارزش و هیچ گونه ارزشی دیگه برای نظر نظر چرا به خاطر اینکه اولاً داره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 اینا این قضیه رو ابزار می بینن دقیقا مثل اینستاگرام اینستاگرام چیه؟ طرف میاد نمیگه این یه شبکه اجتماعی که من میتونم تصاویرم و با دوستان به اشتراک بذارم و نظراتشون رو بگیرم. میاد میگه یه یه ابزاریه که من به هر روش ممکن باید توش فالوور جمع کنم دیده بشم تا بتونم مثلا تبلیغات کنم پول در بیارم یا بتونم به بقیه فخ بفروشم یا حالا دل میاد این ابزار نگاه میکنه.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 توجه میکنی ابزاری نگاه میکنه بعد اون کسایی هم که نظرات رو براش میذارن و نظرات رو به عنوان دیدگاه بهشون نگاه نمیکنه. به عنوان عدد فقط براش عدد مهمه سی تا گرفتم چهل تا گرفتم مهم این چهل تا چیه مهم که چهل تا گرفته برای اینه که این رو به صورت ابزار نگاه میکنه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 این اجتماع رو به اون سمتی حرکت میدن که نباید باشه من نوعی هم که دارم با همه دوستی میکنم وقتی ببینم 20 نفر دارن صفه بازی با من میکنن منم یواش یواش سوخت داده میشه منم صفه بازی میکنم وقتی که می بینم مثلا یه نظر بلند میدم یه نظر بلند بهم من چه می میدونم فالو میکنم فعالو میکنه می منم اینطوری میشم این تأثیره که رو اجتماع گذاشته میشه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 هیچ تزمینی وجود نداره یه آدمی که امروز اومده داره مینیویسه ارزش نداره یه آدمی که این اومده داره مینیویسه کپی میکنه تا ابد همین میمونه نه خود من یه یعنی نمونه کپی کون بودم امروز دارم بهتر مینیویسم فردا 10 سال دیگه بهترتر از امروز میشم از کجا معلومه کسی که امروز داره کپی میکنه دست سال دیگه یه آدم محفقی توی این رشته نشه وقتی که این شرایط هست این طور آدم یا پس زده میشن یا یه کسی میشن مثل خودمون و در نهایت محتوای فارسی از بمیره میاد قربانی یه سری حرکت های اینطوری میشه چون که اون جدید ها هنوز نتونستن خودشون رو وفق بعد همین مجموعه این اتفاق بایدش میشه خود من جرات نکنم کسی رو نقد کنم چون همه غرور دارن یه چیزی میگی زود عصبانی میشن راه بحث و بستن نمیشه خودشو دانه کل میدونن و بقیه حرف موف میزنن و من چندین بار چند نفران نقد کردم جوابای خیلی بدی گرفتم و... آره ما فقط برای خودم پیش که مثلا یه موقع نظر مخالف دادم همتون ویبلاک نظرت بدی راجبم گفتن هم خود بلاگر به هم کرد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 مرگ بلاگین چون کسی که فیدبک نگیره حمایت نشه به قول معروف انرژی از این کار نمیگیره و به نسبت دل سرد میشه انگیزه نمیتونه بگیره از نظرات چون نظری نیست دل سرد میشه و قضیه رو ویل میکنه دیگون زده میکنه من خیلی یارو دیدم که خداحافظی کردن هرچ آدم استرال کردم بر علتش رو پرسیدم دقیقا اشاره کردن که بقیه دارن خشونت میکنن کسی مطالبه منو دوست نداره کسی منو نمی خود و خداافظی میکنن یا برمیگردن ستاگرام یا دیگه نمی نویسسم گلا فضای وبلاگ یه فضای تولید و تاد اطلاعات یه نفر می نویسه تا یه تعدادی از فراددی اطلاع از این اطلاعاتی که داره ان انتفاع داشته باشن این اطلاعات هر چیزی میتونن باشم هر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 خودکشی کنه ولی دیگه اخلاق و دوستی و احترام گذاشتن به همه یه چیز کاملا طبیعیه خیلی کار سختی نیست، اذیت کردن بقیه خیلی کار سختی نیست. اون یه نفر انتقاد میکنه جوابش با فوش میدی چه میدونم پایمنبریات هم میفرستی اونجا که بهش توهین بکنن این دیگه خیلی سخت نیست که این کار رو نکنی. انتقاد کرده جرم که نکرده یا باش مخالفی یا مفق، مخالفی بحث کن، موافقی تایید کن اگر حوصله بحث کردن نداری صرفا ردش کن و بگو دوست ندارم بحث کن. یه نیاز نیست به آدم بفرستی فوش بدن البته بعضا عمدی نیست خود پامنبریا شور میگیرتشون و حمله میکنن کاملا درست میگیم و از این برخورده خیلی زیاد شده که همه رو دارن فراری میدن خودشون میان میگن چرا کامنت کم شده چرا و بلاغ نویس کم شده خودشون با رقب البته بیانم مغصره که با بلاغ برتر یه فضای رقابتی خیلی فضا رو چیز کرده کسیفه و به هم حال به هم زننده کرده که ما بلاغ برتر یعنی چی من نمیفهمم یعنی عملا داره به همین سمت میکشه خودش این سیستم داره میکشه بعد این کامل تعمیم داده میشه به همه بعد این اتفاقات میافته این غرورهای خوشوناتی میفته بعد آمار پای میاد کسی نمیاد بخونه محتوای خوب تولید نمیشه چون نظر خوبی وجود نداره اطلاعات خوبی رد و بدل نمیشه غرورها باعث میشه فشار به برقی بیاد تا نهایت مسیر به این سمت کشیده میشه که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 سر کسی رو ببره همم به, حالش به حال این که داره سرش بریده میشه گریه کنه یا گریه رو نباید بکنه یا سره رو نباید ببره ادامه نده اون سر بریده مرا و خب خیلی ها هستم مثل من پوسکلوفتم که زیاد اهمیت نمیدامه خیلی راحت این قضیه رو ول میکنن بعدم میگم هر چقدر تعداد نویسنده کمتر باشه به ضرر ماست این که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 جو... تخصصی جوک داریم هستن تخصصی روزنمش داریم چرا نداشته باشیم موضوع از تخصص اینه ولی خب همین دیگه میان فیلم قضیه رو بلد شدن دیگه مثلا به بقیه میگن سپامینگ آشغال نویس، خال زنک ایراد میگیرن اولین که ما باید اینو بدونیم که مطالب بقیه به ما ربطی نداره رفتار بقیه هم به ما ربطی نداره اگر داره رو اجتماع اثر میذاره آره. خب اگر یکی داره میاد توهین کردن تو پستا رو نویسه و داره اینو الغا میکنه که اصلا وبلاگ نمیشه یعنی بیای پستو فوش بنویسی اون وقت باید بری گیر بدی ولی وقتی طرف داره برای خودش کارشو میکنه دیگه به کسی ربطی نداره ولی خب هستن دیگه میان فکر کنن قضیه رو بلدن بعد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 که این خانم هرچی تونست بهم به گفت و چند نفر رو علایه من شوروند خلاصی اوزای خیلی بدی شد بعد این دیگه وارد یک چیز عجیب قریبی میشه که دیگه در و میشه فکر میکنه که اصلا اینو چطوری میشه حلش کرد چطوری میشه این قضیه یه فالو کردن رو جا انداخت که با این قضیه چیز قشنگیه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 آدم توش مینی ویسه و اطلاعرسانی میکنه. مثلا روزنامه. انگار آدمی روزنامه داره. بعد فرض کن آدمی که همیان سوراخ میکنه، همی این بفرستن که بیا زنگ خونه بزنه زنگی روزنامه منو بخواد. روزنامه من بخواد. آره. بعد هر که روزنامه من بخواد تا روزنامه تو بخورم. بهشون به توضیح داد. من مشکل من اینه. مش متأسفانه مشکل من اینه که اگر یه محتوای تولید میشد ما شاهد این وز نبودیم. ولی خب محتوای تولید نمیشه، حاشیه زیاد اسپم که از اون طرف سیخونکش میزنه. فکر میکنید چطور میشه جلوشونه گرفت؟ شاید بشه به آموزش جلوشه گرفت که یاد بدیم مخاطب رو باید جذب کنی با نویشتهاد، نه با التماس و درخواست و خواهش. به نظرت فکر نمیکنی بلاگرهای قدیمی هم داری مقصرن وقتی که توی این را تراشی نشده، آموزشی داده نشده، همین وزن پیش میاد. بلاگر تازگار که خیلی زیاده ولی بالاخره یکی و بعد به راه درست بیاره دیگه این بلاگر هر جا میرن با بی‌احترامی روبرو میشن میره یه جا نظر میذاره منو دنبال کن تا دنبالت کنم. بعدو میگه برو گم شو خب مصرمهن به کارش ادامه میده ولی اگه بیاره بگه آقا راه درستش این نیست بیا من راهشو بهت یاد بدم این کارو باید بکنی این کارو باید بکنی ولی وقتی که طرف میاد نظر میذاره یا حذف میشه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 و فضا کامل رقابتی میشه همین بلاگر تاز برای من مهم نیست که تو لیست باشم یا نه حالی بلاگر تاز وارد بالبال بال میزنه و خیلی یارو دیدم که ادعا کنم 15 ساله 16 ساله اصلا 25 ساله دارم می نویسم که وبلاگم وجود نداشت اینا می نوشتن بعد بالبال میزنن که برا تو اون لیست توی فضای رقابتی محتوای فارسی قربانی میشه دقیقا مثل این کسایی می میونه که فکر میکنن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 بایدش میشه که خود محتوا قربانی بشه. این فضای رقابتی هم همین کار میکنه طرف پست زیاد زدن با این نظر رد و ودل کردن میخواد رقابت برنده بشه برهتون اون لیست موای فارسی اینجا قربانی میشه. سال 86 87 ه کنم که هنوز بیانی وجود نداشت با عریز شیرازی یه مصاحبه ای کرد یه مجل ای که از ریز شیرازی مدیر بلاکفا پرسیده بود ازش که چرا بلاکفا،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 مثلا ایراای مذنت اینجاست یا به نظرم این کارو بکنی بهتره. دقیقا دقیققا خود منم کاملا با موافقم مثلا خود من وقتی که وبلاگو شروع کردم کپی می کردم بابراتون نمیشه میرفتم که از می کردم. یه سری سایت های بود زمان که الان خیلی کم شده اصلا نیستش که نه فقط مطلب میذاشتم مثلا دانلود میذاشتم من فقط رو کپی می خب.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 توجه میکنی، اینا اومدم به من یاد دادن همینا رو، بعد آمدن پیشنهاد دادن، یکی یکی، مثلا من اومدم گفتم چطوری این قرمز و آبی کنم، طرف اومد گفت اینطوری میتونی یواش یواش و کود نویسی رو یاد گرفتم، بعد اومدن پیشنهاد دادن کفتن که چرا خودت نمی نویسی؟ تو مثلا در کپی کردی این مسئله رو، خب، تو شاید خودت بنویسی بهتر بنویسی،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 بعد به میاد دادن اصلا منبع ذکر کردن یعنی چی منبع باید ذکر بشه اگر منبع ذکر بشه به قول معروف اون سندیت ویبلاگتو بالا با میبره یعنی ویبلاگت همینجوری هر دنبیلی حرف نمیزنه اگر منبع به نمیسی ویبلاگت قوی تر دیده میشه اصلا خودت شروع کن بری بیسه اینا من یهو الان اون به قول معروف گلی که میچرخه رو سفالگری اونقدر چپ و, راستم و فشار دادن کشیدن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 یکی اومد گفتش من میتونم شرکت کنم یکی بود که قبل اسپم بود کامنت اسپم میداد هم مطالبش کوپی بود خوب. من به جان که بهش گیر بدم رفتم گفتم بیا از خودت بنویس شروع کن خودت مطالبت رو بنویس اسپم نکن راش این نیست اون نمیخواست آمارش رو برای بالا خب بعد وقتی که من این رو بهش یاد دادم دیدم وبلاگش رو منظم ترک کرده کمتر کوپی میکنه و بعضی‌ها از خودش می نویسه یعنی من یه چیزی رو اینجا شروع کردم شاید مثلا از 10 تا پستی که می‌زنه دو تاشو خودش می نویسه باز هشت تاشو کپی می کنه ولی یواش یواش دو دوتا میشه سه تا اونم به خاطر سن نشه مثلا 13 سالشه 14 سالشه هنوز اونقدر نمیتونه بنویسه خب یواش یواش این تعدادش زیادتر میشه میشه یه بلاگر واقعی و وقتی که من رفتم پست چالشش رو خوندم نوشته بود که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 این اساتید که فقط فکر می‌کنن کار خودشون درسته ما متأسفانه اینطوریه فقط ایراد می‌گیرن تو تو خفه شو این یعنی تو تیتربون نداشته باش چون بلد نیستی حرف بزنی نمیان یاد بدن چطوری پشت تیریبون درست حرف بزنیم تیتربون رو می‌گیرن دقیقا همینه ما به همچین کسای الان خیلی احتیاج داریم آره موافقم اگه ما کمک کنیم به بقیه مسلماً فضایی بهتری درست خوشحالم که با موافقی خب توی هات به باند اشاره کردی میشه بیشتر توضیح بدی؟ خب هلان یه سری از بلاگیرها با هم تقریب باند رو دادن و در صورتی میتونی باهات خوب برخورد میکنن که جزه ای اونا باشی حتما یا باند بازی رو دامن بزنی تعریف کنی مدام ازشون اگه جزه باند مخالفشون باشی یا باند رقیبشون جوابتو نمیدن یا باید بعد برخورد میکنن یا ندیدت میگیرن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 گفتم که دوای قبیله ایه چیز جالبیه یعنی این بانده از قبل پیش بینی شدن و با هم هماهنگن یا نه و میدونم باندن یا نه اینطوری نیستش همینجوری باند تشکیل همینجوری ناخودآگاه تشکیل شده به نظرم میدونم باندن ولی گردن نمیگیرن میگن نه ما با همه دوستیم ما با کسی مشکلی نداریم باند نیستیم اینا فقط دوستای صمیمی من از این حرف. درسته البته من فکر نمی که باند تشکیل داده باشن.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 ولی خودش هم پیش دامن میزنند برزنم درسته بعد خیلی نارحت کنم مثل این کلی باشه. تا سوور منم را قس مننسول تو معلاه عجب ح های امیر بگزنددی عجب ماهبلند تا که گردون را بگرددانه. نمیخوام زیاد باش با هم بحث کنیم راجب این قضیه بیشتر از این فقط به عنوان یه دوست و یه کسی که کلن فکر میکنم 16 سال 16 و نیم سال که دارم از اینترنت استفاده میکنم 17 سال شاید به عنوان یه کسی که دیگه واقعا خیلی اینترنت رو میشناسم 17 سال کم نیست خب خیلی ف... بیشتر فعالیت هم توی اینترنت بوده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 سلام وبلاگو لینک بکن یا نکن خب این خیلی این اتفاق قشنگ نیست فضا رو وقتی که از حالت دوستان خارج بکنی اون فضا دیگه به سمت مرگ نزدیک میشه بیشتر فروم‌های اینترنتی هم اگر به مرگ نزدیک شدن به خاطر همین حاشیه هاشون بوده و حاشیه ها باعث شده که این فروم‌ها از هم دیگه بپاشن و دیگه امروز عملا ما یه فروم خیلی قدرتمندی نداریم که فعال باشه مگر اون فروم تخصصی باشه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 این هستش که آیا ایدئالی برای وبلاگت داری؟ آیا هدفی داری؟ آیا وسواس به میدی؟ می‌دی؟ کلاً ایدئالت برای وبلاگت چیه؟ ایدال خاصی ندارم، کلاً هم ندارم. خیلی راحتم تو وبلاگم. نمی‌دونم این راحتی رو مخاطبم هم حس می‌کنه یا نه. سعی می‌کنم چیزی که تو ذهنم هست بنویسم. زیاد اساس به نمی‌دم که وای الان رجیمم بد فکر می‌کنن یا ممکنه چی فکر کنن. هدف خاصی که دروغ چاره دارم بعدم بتونم از وبلاگم یه کتاب بنویسم میدونم نوشتهام هنوز به اون ستح نرسیدن ولی ایدعالم اینه که اول وبلاگم به یه سطح خوبی برسه که بعد بتونم از طریق وبلاگم به نقش کتاب برسم خیلی خوبه درستشم هم همینه چون وبلاگ مال توه و خوب این راحتی خیلی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 نه عالی بودن اون پست. یعنی به حسب نظر تو نه خود اون پست که همسرت با بقیه پست ها ولی نظر خود تو میخوام بدونم اینکه اگر بدونی این پست رو به همون بگو که چه پستی بوده بدونیم که اسم موسندش رو بگی و اسم وبلاگش رو بگی کلیم برامو تعریف کن تو چه موضوعی بوده این مسئله که تو خیلی دوست داشتی. آره خوندم ولی الان خیلی حضور زد ندارم.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 من همیشه به مخاطبم افتخار کردم. خدا شد من مخاطبای خیلی خوبی دارم. همیشه به لایک داشتن، نظرهای خوبی دادند خیلی وقتا دلداریم دادن، کمکم کردن. تو زمینه تر که خیلی کمکم کردن. کلاً خیلی خیلی زیادی ازشون یاد گرفتم. خیلی یار آورم بودن. می‌تونی نظری در مورد من وبلاگم بگی؟ نقدش کنی یا توصیفش کنی خوشحال میشم بشتم من ولی با اومدم وبلاگر وقتی گوزینای کنال وبلاگیت دادم گفتم واو چه وبلاگ نویس خفنیه این اصلا نمی‌شه باش حرف زد الان تعمیل نمیگیره وبلاگ منو نمیخونه که بعدش که وبلاگ قبلی تام خوندم دیدم چقدر فرق میکنه قلمت با قلم این وبلاگیت واقعا قلم جادویی داری میتونی لحنتو کنترل کنی چیزی که من نمیتونم بعضی جا خیلی سمیمی مینویسی، بعضی جه خیلی خوشک، جدی، کلا جالبه برام، خیلی جالبه که میتونی کنترلش کنی بهلاکیت هم دوست دارم، چالش های خیلی جالبی میذاری که من ازم به نمیرسه کلن خوبه، فضاشو دوست دارم، پوست طولانی هم می نویسی که یکم حسله ای ما رو بیشتر میکنه خوبه در کل خیلی دوست دارم که وبلاگ تو بخونم کلن ستارت روشم میشه جز ام با این هایی هست که میام سراره به امسی نظر لطفت خیلی ممنونم فکر ادم میخوایی بگی نمشتهای بلندت حسلم اونو سر میبره ولی نه جدی حسلم اون سر نمیره خوبه ولی نگفتی این لطف داشتی من فکر میکنم که وبلاگ باید با توییت فرق کنه برای همین راحت بل گرچه همانی این ضلال رایتش میکنم، صوتیش میکنم، ولی به نظر من اوکی که آدم بلند بنیمسه و اگه هم این که میشه توییت آدم میتونست بره توییتر، توییت کنم نظر خاصه راجبه به من نداری که گرچه خیلی لحظ داشتی به وبلاگ من ولی منظورم این که کم بیشتر تعریف کن تا حالا قربانی خوشونت که یک کامنته خصوصی شدی هر نوعیش بیا وبلاگ تو مسخره کنن یا کنکور دادن تو مسخره کنن یا اینجا چیز ها کلا ما وبلاگ نویسی داریم که توی ظاهر مثلا خوب دیده میشه ولی پشت سرت حالا اذیتت کرده باشه اصلا داریم. یه چیز کلی بگو خیلی جزی. توی مصاحابق دیگه هم صبت کردیم و دوست نشون بدم که واقعا هست یا نیست بهم به بگو نه واقعا هست.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 حتی انقدر ارزش ندارن که حتی راجبش اونو حرف بزنیم چه برسه این که به اینکه بخوایم به کامنتشون توجه بکنیم و بهتری که این کارو نکنن ولی بدونن که حتی ارزش حرف زدن راجبشون رو هم ندارن و بعد خودشون اصلاح کنن حالا یکم هم تو از ولاگ من تعریف کن. چراش تعریف میکنم بهبت خیلی خوبه و خودم خیلی دنبالش میکنم. چون کلم هم به روزان نویسی ها احترام خاصی قائلم. حتی یکی از به محبوبم محبوب یه خانومیه بدم سارا که روزان نویسیاش هاش حرف نداره من خیلی دوستش دارم روزان نویسی و مثلا جمله بندی یه طوریه که آدم و خندوان یه جور بانمکی می نویسه خیلی کوتاه و زنه به هدف اینو خیلی دوست دارم ولی خب به تو خیلی خوبه بعضی از مطالبات خیلی درجه یک <تصفيق> خیلی ممنون از لطفت خب اینجا من رئیسم ها من باید سوال کنم فکر میکنم که حالتی شوخی کردم خیلی شوخی بیمزهی هم بود در حتی که حتی خودم هم نخندیدم هر هر هر ولی در مورد من خیلی لطف داری و خیلی ممنونم به نظرت من با مخاطبانم خوب برخورد میکنم یا نه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 ما استحت کوتاهی میکنیم و بر <متصفح> دوستش داری بدونی که تو همین حوالیه چه خالیه حالیه, حالیه جای تو روزایی که کوچه بارونیه چه که دوستش داری بدونی که تو همین حوالیه چه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 ها و دکمه هاشو چه میدونم دیدی و گفتی که وا این اصلا جواب نمیده این خیلی سطح بالاست و اینا بخوام بپرسم ببینم چرا این فکر رو کردی و اصلا چرا باید وقتی که یک بدباگی رو میبینیم که حالا پستاش خوبه یا مطالبش خیلی خوبه یا قالبش حالا خیلی حرفی و خوبه بعد این تفکر رو به ذهن الغاب بکنه که این نویسندش دیگه قرار نیست نظر درست جواب بده یا محل بذاره و این صحبت ها چرا صحبت همچین تفکری تو این ذهن شکل بگیره اتفاقاً به نظر من وقتی کسی زیاد روی وبش وقت میذاره یعنی اینکه خب وبشو دوست داره و خب با مخاطبانش رو هم دوست داره و قطعا قطعا بیشتر برای مخاطبش و وبلاگ دو یه وبلاگ نوسی که توش هست وقت میذاره. فکر می‌کنی علت این تفکر چی می‌تونه باشه ؟ نظر چی؟ نمیدانم شاید به خاطر پرخورده ای باشه که دیدم معمولا وبلاگهایی که حرفی ترن یا پرطرفدارترن، ترن اینجده که دنبال نمیکردن یا جواب نمی دادن. مثلا من خودم معمولاً کسایی که برام کامنت میذارم میرم وبلاگش رو تا با روحیشون آشتنا باشم بفهمم. مخاطب همون چه رویهی دارن، سلیغه زندگیشون ولی خب معمولا برای ویبلاگ های پر مخاطب که کامنت میذارم این چیز رو نمیبینم نمی که بیان دنباله اینکه که رو بشناسن یا وبلاگ های مخاطبه رو بخونن برای همین همچین نصیب آدم القامشه که براشون مهم نیستی و خب آره و متاسفانه اصلا از سر وقت نکردن نیست به نظر من کاملا از سر غروره.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 آره خیلی دوست داشتم با این فکرت مخالف باشم ولی نه موافقم و متأسفانه درسته حتی اون کسایی هم که ایراد به این میگیرن که چرا مثلا بعضی ها چرا مثلا فلان وبلاگ رو مثلا مردم میخونن اینطوریه و فکر می‌کنم در درد درد وبلاگ نیست درد درد حسادته متأسفانه.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 به تو کامنت بده با اون هم من مشکل داشته باشم یعنی دخالت بکنم توی این که اون آدم چی کار بکنه اگر من مشکل دارم با تو ایراد از منه ایراد از توه بین مادوت است ما بعد یا مشکلمون حل کنیم یا باید سر می‌تون کار خودمون باشه ولی تعمیم دادنش به همه ی به نظر من درست نیست اینکه چون من از تو بدم میاد پس همه بدشون بیاد و تو بعد هذب بشی تربون از دست بره خیلی نه اقلانیه نه منطقیه نه انسانیه هیچ چی نیست و دکتاتوری هم یعنی همین وقتی که هیچ کسی نتونه حرف بزنه چون حرف من باید باشه فقط نمیشه که همه چی به دستور من باشه هرچی که من بخوام باشه ولی خب متاسفانم مخاطبه همینو سر می نهند و وقتی که من نوعی دستور میدم که فلانی میام، اش نمیام عملا بگم این کارا نکنید ولی وقتی که مخاطب می بینه که اگر بره فلان جا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 سایت چیه؟ سایت هر سایتی خودش یه سایته خب سایت خودش تو ماهیت خودش سایته وقتی که ما میایم اجتماعیش میکنیم دیگه سایت ها دیگه اون تعریف اجتماعیشون رو دیگه میگیرن سایت به نهایت خودش یه سایته ولی ما جمعش میکنیم و مثلا سایتستان رو درست میکنیم مجموع مثلا 50 تا 100 تا سایت که به هم متصلن به لحاظش اجتعامل اجتماعی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 چه میدونم یک پزشک مثل خیلیا ها، خیلیاشون هستن که الان دیگه البته دیگه یک پزشک گباشباش شده مجله دیگه اون ماهیت قبلیشو نداره ولی هستن زیاد هستن که اینطوری فعالیت میکنن یه تو قدیمی‌تر مثلا نارنجی نردبون اینا مثلا خیلی خوب بودن و اینا تکی مینوشتن و خب مخاطبای خودشون داشتن ولی خب اینا خودشونو میان یه ساعت میبرن بالا و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 سباکتر آدم هم رسانی کن شبکه اجتماعی ویو خیلی بالایی میخوره چون آم پسنده ولی ما همین داخل خود خیلی ویبلاک های داری هم داریم که پستاشونو بذاریم توی شبکه اجتماعی تره هم براش خورد نمیکنن نمیگم اون مطالب سطحشون پایینه نه اتفاقاً بازم میگم همه مطالب ارزش خودشونو دارن ولی اون مطالبی که اون طرف تولید میشه به قانون معروف آمبه پسندتره و برای همه قابل استفاده است بعد هرچی پوست ها توی این فضا سختتر بشن آمبه پسندتر بشن به هم نزدیک بشن نظرات پایین میاد و کمتر میشن یعنی توی اجتماع این وی حسابی ضعیفیم و خیلی از بلاگیرهای مدده عامل این فضایی مسموم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 تو توییتر گذاشتم ریتوییت شده و دیده شده یعنی اون ماهیتش اونجا جداست است و من اون طرف دارم فعالیت میکنم ولی این طرف مثلا توی سرویس های بیان و بلاگ فا اونجور چیزا اینا انگار خاک مرده روش پاشیدن اصلا پویایی نداره و علتش همین هاشیه ها همین اجتماعی که ما درست کرده بودیم برای بهتر شدنش برای معرفی بیشترش برای قوی‌تر شدنش و ببینیم می‌بینیم که چطور همین اجتماع بندیه داره براتش به غرض مخصوصا بین کسایی که تو بیان و بلاک تواصلا یه سری تشننجایی هست که معمولا وببللاگ های همدیگر سر نمیزنن یا کمتر دقیقا دیگه جپ بندی شده و این هم تقصیر علیرضا شیرازیه اینجا هم باید یه دونه نمره منفی بدیم به خاطر اینکه اولین قدم و خود علیرضا شیرازی گذاشت اونم با این کار که کللا بیانی ها نمیتونن روی بلاک ف نظر بدن آب با آدرس خودشون نظر بدن و خب کللا انگار.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 یه زمانی وبلاگی پستی میزد بعد یکی در تکمیل اون پوستی پست میزد و اون وبلاگ رو منشن میکرد لینک میکرد و یک وبلاگ دیگه ای در نقد این دوتا پست پست میزد یا اونم نظرش رو میگفت بعد همدیگر رو معرفی میکردن به مخاطب همرسانی میکردن حمایت میکردن پست همدیگر رو انتخاب میکردن تشریم میکردن مخاطب ویب زیاد بود اون زمان اکثررا قشر تحصیل کرده بودن دانشجو بودن مواصل بودن یا کارمندی بودن که حالا اینترنت داشتن و دنبال محتوا بودن مثلا به دنبال میکردن و یادم کلی نظر داشتیم از کسایی که خودشون وبلاگ نداشتن ولی نظر خیلی خوبی می نوشتن و کلا این اه اینا خیلی از همدیگه حمایت می کردنن مثلا اه اه می اوومدن همدیگر پست هم گ معرفی می کردن. مثلا یه پستتی مینوشت ولی خب زیرش شددون پارق می نوشت که مثلا فلانی هم فلان پستو زده که خیلی خوبه به خونی دو اینا. اینطوری بود اون زمان چقدر کار خوب ای کاش بازم داشته باشین آره آره درسته ولی خب الان نداریم آه... الان کلا محتووا و محتووا فارسی و اصلا همرسانی کردن و اینجور چیز ها کللا مرده و جاشو داده به یه سری.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 بعد اون زمان اینا مثلا می اومدم با همدیگه نظرشون رو روحم میریختن تبادل اطلاعات میکردند تو نظرات میشد راحت و با نقد کنی مطالب رو نقد کنی اونا پاسختو با مهربونی و احترام می دادن یا اگر نقد وارد بود قبولش میکردند خودشون اسلام می کردن، رو میتونستی تکمیل کنی قشن گوش میدادن بحث میکردن.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 به زور برقیه میاد میگن چرا اینو معروف میکنی چرا اینو گنده میکنی آخه همین دیگه ای این ها هاشیه های قضیه است این ها است قضیه چرا من نتونم مطلب خوبه کسی دیگر رو به دوستان پیشنهاد بدم جورت نداشته باشم چون ممکنه چهار تا باند دیگه منو بایکوت بکنن منم اگر شروع کنم قربانی میشم چون در نهایت قاعده هستش و چون فرهنگش نیست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 خودم مج... خودمو مجبور میکنم که برم نظره بعدم رو بهش بگم اولاد محترمانه ولی خب به تو کسی گوش نمیده و به ضرر خودم میشه پس تا سعی میکنم که نخونمش آره دیگه همون مگر اینکه وسطش بی خیال بشه بریم بیرون آره من همونطور که عرض کردم قشن یادم اون زمان هرکیس که یه مثلوی به پایین پاور مینوش پاور اقای دو نخته. مثلا می گفتش که فلانی هم یه مطلبی در رابطه با این نوشته اونم بخونید مثلا خوبه امید. یا مثلا یه کسی یه مطلبی می نوشت بعد پایینش می نوشت اینم راجب این موضوع یه مطلبی نوشته اینم بخونید اینطوری هم دیگر رو معرفی می کردم ولی امروز همچین چیزی نیست من یادم بعدی که تو بلاک بودم یه نفری یه پستی نوشته بود بعد من در راستای تکمیل اون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 این برای توه و تو باید بری زیر پست نظره من هم بذاری این انگار به نظر دادم بعد این به پت بره متصل بشه لینک بشه که مثلا راجع به این مطلب فلانی هم چیزی نمشته میتونید نظر اونم بخونید انگار نه انگار نمیدونم کللا خوشمون نمیاد دیگه اصلا میگه بعدمون میاد ولی تو ظاهر نشون میدیم که انگار همدیگه خوش خوشمون میاد کلند. یعنی کامل محتوا قربانی اینطور رفتارشه. وای، یه بار من یه پستی رو معرفی کردم توی وبلاگم کلی کامنت اومد برای من که تو برای چی اون رو تبلیغ میکنی؟ پول گرفتی چرا اونطور تبلیغ نمیکنه؟ وای پستش خیلی سطح پایین بود تو چرا اومدی این رو توی وبلاگ تبلیغ کردی خلاصه اینقدر چیزایی منفی گفتن که ادامهش ندادم همون دیگه وقتی که آدم لین هم میکنه یا منشنم میکنه میگن پول گرفته حتما یا تبلیغ داره میکنه. یا همون جریان باند و بایک تو اینا پیش میاد و کلا این قضیه انگار خیلی سخته بدم همه دوستدارن از همه انتقاد کنن ولی ازشون انتقاد نشه. یعنی من دو همه رو بیام انتقاد بکنم هرچی درلم میخواد بگم ولی بقیه از من کسی انتقاد نکنه من تعامل این ها رو ندارم. خب این نه منطقیه نه درست آدمت دوست داره نقد کنه باید انتظار نقد شدنم،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 کل قضیه رو میشکافیم و توضیح میدیم اصلا همدیگه رو بکنید اصلا کلم با من کاری نداشته باشید با همدیگر این کارو بکنید چون ببینید یک وبلاگی که پر مخاطبه وقتی که میاد پستی وبلاگ کم مخاطب رو میذاره درست داره به من مسلب به اونو پیشنهاد میده و من خوب اون وبلاگ کم مخاطب به چشم نمیاد نمی بینمش. ولی خب وقتی که مسلب اون میاره میذاره توی وبلاگی که پر مخاطبه خب درست من، اون مطلب رو به منم آگاهی رسانی کرده. و خب از این جهت خیلی همرسانی مطلب مهمه اینکه فقط خودمون بخونیم که قشنگ نیست. امیدوارم درست بشه. آره به نظر من بلاگ فاک بودیم یه ذره ها بیشتر بود. همین که مجبور می‌شدیم روزی چند بار به وبلاگ‌های محبوبمون سر بزنیم ببینیم ویروس شدن یا نه خیلی خوب بوده. آره من من میگم هر کاری می‌کنن ولی کلان فرهنگ این دنیا رو عوض نکنم و فرهنگ جدید بعد تزریغ نکنم به این داستان من وقتی این ویبلاغ که یه ذر قدیمی تران رو میخونم بعد مقایستش رو با اونه که تو گذشته میخوندم تو ذهنم یه نتیجه گیری میکنم حس میکنم همه اونه که خوب بودن خوب بینوشتن نقد قبول میکردن رفتن اکثران هم ویبلاغ هاشون رو بستن و رفتن بل کسایی که تو اقلیت بودن موندن، ادامه دادن و متاسفانه نسل جایدام به خلقت خودشون دروردن و این شده که به اینجا رسید آره. باهات موافقم. تا شبایی که اکسات رو برومه امشبم مثل شبای دیگه یه خواب راحتار زومه خالیه. جای تو روزایی که کوچه بارونیه چه حالیه اون که دوستش داری بدونی که تو همین خالیه. حالیه حالیه جای تو که کوچه چه خالیه اینکه که دوستش داری بدونی که تو همین حوالیه چه حالیه من خودم کسانی رو دیدم که وقتی لغو دنبالشون کردم چون فکر کردم پستشون سلیقه من اول فکر میکردم پست‌هاشون سلیقه منه بعد که مدت خوندمشون دیدم نه سلیقه من نیستم و وقتی لغو دنبالشون کردم به محض اینکه به مرز لغو دنبال کردنشون سر پیدا می‌شد و یه حرفی حالا تو پاکت میزدن یا حالا یه تیکه می‌انداختن یعنی من آه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 لغو دنبالش کردم مثلا برای توهین فوش که گیر بدن چرا لغو دنبال کردم اومدن حرف بزنن وای چقدر بد البته منم بودم به کسایی که لغو دنبالشون کردم ولی خدا رو اینجوری نشد که بیان فوشم بدن فقط دیگه کامنت نذاشتن برم یا مثلا یه بار یکی رو به صورت موقت لغو دنبالش کردم که ببرم توی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 بعدم دیده شده مثلا یکی سری رو لغو دنبال کردم بعد رفتم قسمتی که سایه که منو دنبال کردن چون بعضی از عکس‌ها رو آدم زیاد می‌بینه براش شناس میشه تصادفاً دیدم که ای همون لحظه من لغو دنبال کردی یعنی یه آدم یعنی نشسته پشت قسمت دنبال کننده هاش داره ظلم میزنه ببینه اسم که کم شد که همون لحظه بره لغو دنبال بکنه خیلی تعجب برانگیز بود برام مثلا گفتم چشت، چشت چرا؟ این آدم نشسته دائم 24 ساعته داره ظلم میزنه کسی به مهز اینکه که لیستش حذف شد سری لغو دنبال کنه واقعا نقع بیکاره چه دقیقی هم دارن بله چه دقیقی هم دارن ولی خب با اون حرفت هم موافق هم کاملا درسته که یه سری عقلیت ها مونده بودن بعد اومدن این فرهنگ و رواج دادن که تهش شده این نه من دو نفر رو که لغوه دنبال کردم یکیشون اومد رسپم به این داد یکیشون هم اومد تیکن داخت من هم از این حرکتشون خیلی بد هم اومده خیلی ناراحت شدم ولی خب گفتن یکیشون لغو دنبال نکرده بودم داشتم مرتب میکردم رو ببرم روی فیتخان شخصی خودم اونجا بهتر بخونمشون چون که بیانیه بیان این طوریه که وقتی یکی پست جدید میزنه مثلا اگه پست قبلیش هم نخونده باشی رد میشه فقط آخرین پستو نشون میده و یه تو فید اختصاصی اگر یه بلاگر تو یه ساعت 20 تا پستم بزنه همه اون 20 تا پستو نشون میده و من می‌خواستم آدرسشو ببرم تو اونجا که همه پست‌ها رو بخونم پست از دست ندم و خب اومد تیکن کندا من خیلی ناراحت شدم و از همون فیدم هم حذفش کردم چون خیلی بهم برخورد بعد بعد میدونید چرا اینو خیلی دقت میکنن به خاطر اینکه چون فکر میکنن به تعداد دنبال کننده است یعنی دنبال کنده بیشتر باشه خوبه نه همین سر دنبال کردن و نکردن دقت کردم دیدم همه کسانی که نو دنبالشون کردم همشون هر 10 تا پستی بار که حالا به من 10 تا پستی بار نظر داده بودم ولی من فکر میکردم که اینا مثلا از پستم خوش... خوشش اومده نظر گذاشته ولی وقتی دیدم نه حتی نظر هم متاسفانه تقبادلی شده یعنی نظر بده نظر بدم هر ده تا نظری که دادی یکی من میدم دیدم وای خدا چی شد اصلا کجا رفتیم ما آره متاسفانه نظراتشون هم همینجوری شده اه... اگه من نظر کوتاه بذارم، نظر کوتاه میگیرم، بلند بذارم، بلند میگیرم، سکوت کنم، سکوت تعمیل میگیرم. <تصفيق> خیلی برده اگه اینطوری باشه. برای همین اتفاق این ایده گاهی به سرم میزنی که کلند برم تو اون نو فاز از ربلاد نمیستی که به قول معروف بشقا از بشقا به جدا کنم، برم توی یه جای کاملا جدا بنویسم مثلا همونی که میگم یه لول میبرم بالا. بعد مطالبه همه پسندی می نویسن و نشمیدن و این دیگه تو اجتماعه نباشم برم بیرون جدا برای خودم بنویسم و یه سری مخاطبای جدیدی رو جذب کنم بعد این قضیه که کامنت کوتاه بدم کامنت کوتاه می گیرم بلند بدم بلند بگیرم می یعنی چی دیگه یعنی که اصلا همیتی نداره برد فقط توادل نظر می کنن. من اوایل برام مهم نبود چرا اینطوریه ولی بعد از این مدتی که گرفتم زیر بین متوجه یه شدم که برای اولین بار اصلا تو این گفتگو میخوام ازشون رو کنم که هم خودم حسابی تعجب کردم هم شما حسابی تعجب کنید و هم شنواندگان عزیز حسابی تعجب کنم آره و شاید تیاله پاشه من ماهای اول که شروع کردم وقتم به نسبت آزادتر بودش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 مثلا من پست رو در ساعت 11 و 45 دقیقه مثلا منتشر کردم و میدونم دونم خوندن این پست در سریعترین حالت ممکن 7 دقیقه زمان میبره و می تو کامنت ها می بینم 11 و 47 دقیقه یکی اومده نوشته خیلی خوب بود لذت بردم واقع تو چطوری تو دو دقیقه مثلی که حداقل برای آدمه که تندخونی می کنه این مطلب اه اه طول میکشه تا خونده بشه تو چطوری تو دو دقیقه همه اینو خوندی نظرم تایپ کردی تو دو دقیقه متوجه میشم که فقط سرون کلیک کرده اومده نظر رو دازه رفته اصلا مثلا نخونده یا مثلا بعضی میاد به کل مرز کلی نگاه میکنم مرز رو نمیخونم مثلا از بالا محمد رو می داره میداره میاد جلوتر مثلا کودک مریض مثلا سر قسمت لبو خب سر داستان لبو. از اون بالا شروع میکنه مثلا یه اسمیه. خب مثلا ناصر. خب ناصر اون بالا میخونه. میاد پایین دختر مریض رو میخونه. میاد پایین تر سرطان رو میخونه. میاد پایین تر لبو فروشی رو میخونه. میاد پایین تر پیرمرد پول دار. پایین تر 300 میلیون پول. بعد زیرش میزنه چه ناصر خوششانسی. یعنی یا مثلا میزنه بیچاره ناصر که بدبخش شد رفت. در صورتی که داستان این نبود.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 اگه با عشق نمیخونی اگه وقت روش نمیذاری اگه میخوای تندخونی کنی خب نخونی بهتره وقتت اگه ارزش داره وقتی تو با خوندن من تلف نکنین تازه فکر میکنی اگر به من بگی تندخونی کردی مثلا خیلی من قانه میشم تازه تو تا واقعا بیشتر به بر میخوره. که تو وقت نداری چرا منو تندخونی میکنی نخون این وقتو بذار کار بهتر انجام بده این وقتو بذار کتاب بخون این وقتو بذار درس بخون همین دیگه اگر قرار باشه منو خونی کنی دیگه الکی نظر اسپم میدی وقتی نظرت بی رفت به پست فقط داری نظر میدی که من بعدا نظر بدم نظرت اسپم محسوب میشه بعد شنوندگان من مندگان عزیز توجه کنیم که ما توجه کنید که ما داریم قسمت اجتماعی بودن و تعامل داشتن وبلاگ رو بررسی میکنیم وگرنه به صورت استاندارد برای یه وبلاگ نیست مهم نیست که چه کسی رو پاسخ میده یا نه یا مثلا پستشو چطور میخونه اگر نظر پاسخ داده شده خب پاسخ گرفته و پاسخ نداده باشه مثلا من وقتی که میرم یک رو نظرش رو میزنم یه پاسخ داده باشه که اوکی ولی اگه پاسخ نداده باشم میفهمم که خب من یا وقت نداره یا چه میدونم سواد پاسخ رو نداشته یا حالا علت هرچی بوده نداده ولی در رابط وقتی که ما قضیه رو تعاملی میکنیم اجتماعی میکنیم دیگه این نقط ها کاملا به قضیه نیست. اینا آفت های این اجتماعه و خب باید یا حل بشه یا بلاخره یه فکر باید راجع بهش بشه یه لحظی یاد برنامه هفت افتاده آره این دیگه مثل دریافت نظر مثل دریافت ایمیل میمونه نیازمندی اینه که یکی بهش پاسخ بده نیازمندی یه واکنشیه نیازمندی یه سری کاراه نظرم مثل میگم نیمه مثل ایمیله نظر یعنی اگر هر فیل روی این پ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 مثلا من با لگرهایی که اون موقع بودن و به هم یاد دادن در اصلین تجاره به زندگی رو کسب کردم، وارد تر سایت شدم اینجا شیزا رو یاد گرفتم من نوعی بعد با دشمنی و تبادل کامنتولایی کشی و اینا به قهقاله تشرف میبریم روشت نمی کنیم بعد هم با, با وجود این, که این کار رو انجام میدیم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 چرا دارن اینو فرهنگو یاد میدن و بلاگر تازه وارد اینو یاد میگیرن وبلاگ نمیسه که تازه وارد شدن اینو یاد میگیرن فکر میکنن کلان بازی وبلاگ اینجوریه تو بازی اینستاگرام باید فالو فالو بک کنی باید فالوورات جو دیویس هزار تا مثلا گیمو بردی بازی وبلاگ هم مثلا اینجور کارا این کارا رو بکنی این کار این اتفاقات بیفته برنده ای اگر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 اگر حسادت بود که خب همه هم میگفتم بیاید فقط منو رو بخونید. من آدم خوبه منم بیاید فقط منو رو بخونید ولی من میگم اخلاق رو توی فضایه مجازی یاد بدیم یاد بدیم که قاعده اصلی بازی این نیست یاد بدیم که ما وبلاگ بد و ویبلاگ خوب نداریم یاد بدیم که اصلا وبلاگ شاخت نداره شاخ اصلا در شن و منزلت وبلاگ نمیسی نیست استفاده این از این کلمه اصلا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 یک کتاب خوبی رو خوندی که کسی دیگه نخوندی نه یه بکب تو سرش بگو خاک تو سرت نخوندی قایم نکن رو فهمیدن دور نکن انقدر خودخواهی ما رو به قهقرا میبره که اصلا داغون میکنه ما رو ریچارد ستالمن میگه که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 ازش دگرمی نمی گیریم چون گیر عددیم عدده فقط مهمه. اگر قضیه عدده بره کنار تعداد بره کنار همه همدیگه رو حمایت کنن ببینیم که گاهی یه بازدید اونقدر گرمه که سوحال اشقهال 100 تا بازدید رو میده، یه دونه بازدید. وقتی ما وقتی که میشمیمش پس بیا ارزشش کردیم چون میخوایم زیاد بشه کیفیت مهم نیست کمیت مهمه. وقتی که زور می برای حمایت نکردنه،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 اندازه و جایگاه مساوی داریم برابر داریم و قراره نیست که کسی بره بالا و بشه یکم بیایم پایین یکم همدیگه رو کمک کنیم عشق ببرزیم و فضا رو مسموم نکنیم خیلی توی این موضوع صحبت کردیم آره دیگه فکر کنم مخاطب حوصله‌اش سر بر بهتره پسو عوض کنیم موافقی اگر موافقی فکر کنم یک استراحت کوتاهی بکنیم و باز برگردیم به ادامه‌ی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 صبا عزیز برگشتیم امیدوارم که هم موسیقی که پخش شد لذت کافی رو برده باشید دنی عزیز اهل فیلم و سریال و اون جور چیزا هستی نه خیلی نگاه نمی کنم نگاه می کنم ولی رو یادم نمیاد اوخ مرسی که گفتی با... کلا سوالم هم ترکید رفت رو هوا ولی خب یه فیلمی که اسمش یادت مونده باشه رو بهمون بگی خیلی ممنون میشم بگی مثلاً چه فیلمی رو خیلی دوست داری خیلی معنیم میشه حتی یه دونه. از یه کنکوری تا چه فیلم می دارین؟ آقا من کنکوری بودم. فیلم ندیدم. چیزی که پارسال دم خیلی خوشم آمد What happened to Monday؟ یا همون چه اتفاقی برای دوشنبه افتاد بود؟ خیلی خوشم آمد از فیلمش. و wow. what, what happened to Monday؟ uh, فیلمیه که من ندیدمش و سعی می‌کنم ببینمش دوستان عزیز What happened to Monday؟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 همونطور که خودت هم می من قصد داشتم که کلم و بللاگم ببندم بندام برم نمیخواستم ادامه بدم چون هم دیگه شروع شو و اولیار نداشتم به خاطر این فضا همین که حس کردم کم کم داره کامنت های منفیم زیاد میشه مفه بمون بمونموننده خوبه رفتن چیزی رو حل نمیکنه. میدونی ما شیرینی یه چیزی رو چشیدیم که دل کنددر ش برمون خیلی سخته. تحتش یه جا باید باشه که ما خالی بشیم. رافی میکنم بمون نرو برای همین نمیتونم تضمین کنم تا کی هستم ولی از ترس تهدیدات که حالا حالا هستم سعی میکنم بمونم ایدال خودم اینه که تا وقتی نفس میکشم بنویسم ولی بستگی داره که تا کی میتونم بدون قضاوت بنویسم تا کی این راحتیو دارم تا کی از دست آشنا در امانم و خیلی چیزای دیگه آقای اینو که موافقم ما دیگه معتاد نوشتن شدیم من وقتایی که نویسم هم تو ذهنم هی جمله رو تکرار می‌کنم یه بار هم عکسو برای یکی از مخاطبام فرستادم روزی که میرفتم سر آزمون از آزمون که برگشتم پستی که تو ذهنم بود رو در دفترچه آزمونم می‌نوشتم خیلی خوبه آره منم هم همین میگم تری تریش بدچه خالی بشین فکر کنی که یعنی نظرت چیه فکر می‌کنی که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 حالا شاید بیان یا بلاگ فا اینا نباشن یه روزی تمون بشن ولی کلا وبلاگ نمیشتن فکر میکنم تا زمانی که وب باشه وبلاگ هم بشه داش حالا به نوعهای مختلف یکی وبلاگش رو توی کانال تلگرامش می‌نویسه یکی توییت می‌کنه یکی توی سایت ویرگول می‌نویسه یکی توی پرژن بلاگ داسای آرمی می‌نویسه ولی من فکر می‌کنم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 خب ترخ ترین و شیرین ترین اتفاقی که توی دنیای وبلاگ برات افتاده چیه بهم بگو خدا را خیلی اتفاق اتفاقی ترخ نداشتم که بخواد یادم بمونه معمولا بعد چند روز یادم رفته ولی یکی از شیرین تریناش میتونم بگم وقتی بود که بعد از چند ماه برای اولین بار تصمیم گرفتم وبلاگم ببندم و پست گذاشتم پست خدافی گذاشتم و اصلا باور نمی کردم انقدر کامنت خوب بگیرم انقدر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 چون یه چالشی که برگزار کرده بودم و همه ساله مهم اونجا کرده بودم الان نمیدونم واقعا از چی بپرسم؟ خب تو هم شرکت کرده بودی اونجا پرسدن توبارش یه یعنی مقداری تکراره ولی اگر مدیر خود بیان بودی امکاناتی که اضافیان و مشکل سازن چیان؟ چ چی ها رو حذف می کردی و چیا به محیط مدیریت اضافه میکردی و فکر میکردی اینا خوبه که وجود داشته باشن. چه سالال سختی پرسی؟ به نظرم امکان دنبال کردن و اینکه دریافت پاسخ نظراتمون رو حذ می کردم تا مجبورشیم برای اینکه ببینیم کامنتمون رو جواب دادن یا نه سر بزنیم به اون پست و اینکه کاش میشد م... کسایی که روزانه وبلاگمون رو بازدید میکنن و لیستشون رو ببینیم خیلی دوست دارم بدونم خارج از فضای بیان کییا میان میخوننم یا،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 نشون نمیده که کیه مثلا ثه نام نشده که مثلا شماره آی پی فلان مثلا صاحبش مثلا اسقره به خاطر اون این عملا ممکنه ولی خب اینکه آخرین بازداد کیا هستن میتونه روی شماره آی پی ببینی و ببینی که چه آی پی ای به سرر زدن از اونجا متوجه بشی که کیا دارم به میخوننت ولی خب همه که آی پی خاص ندارم متاسفانه و, و آی پی هم خب عوض میشه و این مقداری این از این جهت سخته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 ولی بعدش احساس کردن که نه چون اومد فقط محدود میشه به همون میزان حمایت ها. آدم فکر فرید میکنن هرچی که اونجا بدن فقط صرف خریدن قهوه و پوفک و بستنی و اینجا چیزا میشه به حاطر تصمیم گرفتم عوضش کنم بعدم آخه یه طوری بودش که آدما اینطوری به آدم ها کرد میکرد که انگار فقط حمایت کردن یعنی اینکه، که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 ولی خب خواستم این قالب و اینطوری بکنم که کسایی که میخوان کمک پردازشی بکنم بتونن کسایی که میخوان حمایت مالی کنن برای یه پروژه خاصی بتونن حمایت مالی بکنن، پول بدن و در نهایت کسایی که میخوان حمایت غیر مالی بکنن اون قسمت برن. ولی اگه خیلی فکر میکنی ایده با بود چشمیه، دو قسمت دیگه دوباره باز میکنم و می‌نویسم که منو مهمون کن و کسایی که بخوان منو مهمون برن اونجا، با درگاه جدا یعنی.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 یعنی یک قسمتی از وبلاگم بشه. ولی اگه نشود خب من روزانه ها پخش و پلا هستش مثلا توی روزانامو بیشتر توی گوگل پلاس می‌نویسم. اگر گوگل پلاس دارین و من رو دنبال کنید ببینم دنبال کننده ها به حدی رسید که ارزش داره بشینم روزانه توش بنویسم. از توی گوگل پلاس می‌تونید روزانای منو بخونید که البته گاهن من توی اینستاگرام و کانال تلگرام هم می‌نویسم اینا رو. یعنی نمیتونم پیشنهاد دومت رو برم دوباره وبلاگ بسازم دو دو بشه ولی اگر دوست داشت عزیزانی که دوست دارم میتونم گوگل پلاس من رو دنبال بکنن و از اونجا خب روزانه های جدید روزانه ها رو مینویسم اگه ببینم دنبال کننده وجود داره خیلی ممنونم که نقد کردی یه چیز دیگه هم هست اینکه که بعضی پوستات خیلی خوش که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 تویترم رو دنبال کنید و بخونید من کانالتو دنبال میکنم ولی خیلی کم مینویزی پس پسات رو بیشترش کن. چندش پتمن بیشترش میکنم ولی خب اگر گوگل پلاس من رو همت کنی خیلی خوبه و من اونجا بیشتر رو تخصصا راجب روزانه ها میتونم بنویسم خب خیلی ممنونم که در هر صورت من نقد نقط کردی مرسی ممنون از نقط پذیرید نیلی احل کتاب هستی چقدر کتاب مطمئنم که زیاد کتاب میخونم و چه کتابی رو خیلی دوست داری اه. یا چند تا کتاب رو خیلی دوست داری اونایی که خیلی دوستداری رو اسمشون رو بهمون بگو آره کتاب زیاد میخونم میتونم بگم عشق اولم کتابه کتابایی که زیاد باشن ارتباط, باش ارتباط گرفتم و تو سشون داشتم یکیش کتاب دا بود که خیلی باشن ارتباط گرفتم و اشکمو در آورد کتاب دیدم که جانم میرود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 ما رو مهمونه یک خط از کتاب جودی عبود اثر جین وبستر اگه اشتباه تلفظ نکرده باشم اسمشو کردی به نظرم این یک خط کاری یه پارگراف میکنه دیگه من که خیلی تحت تحصیلش قرار گرفتم فکر نمیکردم مصاحبه اینقدر جالب باشه خیلی به من چسبید مرسی <تصفيق> به منم خیلی چسبید مخصوصا قسمت میکسش که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 شاید از نظر فیزیکی روحی متفاوت باشیم ولی از نظر حقوقی ما هیچ چیزی کم نداریم باید یاد بگیریم روپای خودمون وایسیم نظاریم انقدر ساده از راه احساساتمون بشکنیم آسیب ببینیم برای همین هر وقتی آهنگو گوش میدم دوست دارم که یک تلاشی تو اینجا جهت حد بکنم حداقلش اینه که به اطرافیان خودم این حقشونو یادآوری کنم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 چه حسی، چه نیرویی و معمولا کلان چی تو رو بلند میکنه و میذاره که کلان از این تحصیمت مصرف بشی و دوباره بنویسی بعضی وقتا میشینم پست میخونم خوندن پست باعث میشه که خودم هوس حوض کنم بنویسم بعضی وقتا چند روز فاصله میگیرم بد دلم تنگ میشه این حس ارتیاد بهم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 از تو هم ممنونم به خاطر این ایده خوبه روز وبلاگ نویسی فارسی رو به همه شما بلاگیره و خواننده های خوب تبدیل میگم و امیدوارم که یه روز دور همین روزو چشم بگیریم. همچنین امیدوارم قلمت مانا باشه هم برامون بنویسی و ما کیف کنیم.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 به پایین برنامه رسیدیم همونطوری که مهمون برنامه شما رو مهمانی موسیقی کردن با هم موسیقی تیدراج پایانی رو میشنویم و من از حضور شما مرخص میشم خدا نگهدار آهای خبردار مستی آشان شب سیا تو شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزن جار آهای غمی که مثل بختک رو من شده ای آبار از گلوی من دستات بردار دستات بردار از گلوی من از گلوی من دستات و بردار